حدیث 15 باب صبر جلد ببخشید جلد بله جلد دوم اصول کافی صفحه نود و یک حدیث از امیر المؤمنین علیه السلام و ایشون از رسول خدا نقل کند از صبر الثلاثه صبر سه تا صبر و صبر علی الطاعه و صبروا و المعصيه اول این پله اول نگاه کنید یک مصیبت آقا دنیا داریست که مصائب مشکلات ولنبلون نکم بشیئ من الخوف و ونقص من الاموال ولانفس و وبشر صابرين دنیا همینه باید یه مشکلات یه گرفتاری ها مصائب پیش بیاد برای انسان چقدر در این مصائب جذب و فزع و بیتابی میکنن یا صبورن این یه مرحله امتحان آزمایش اولیه و صبر تا التاعه صبح میخواد باشه نماز بخونه من دیشب دیر خوابیدم حالشو ندارم صبر همینجا شروع میشه یه دفعه که صبر مثل اصحاب ابی عبدالله تو کربلا که مطرح نمیشه بعد پله پله شروع کنه من بدبختی که شب از فیلم نمیتونم بگذرم میشینم بعد صبح یا خدایی نکرده پا نمیشم برای نماز خوندن یا اگه پا میشم چنان با تلو تلو درکت نمازی میخونم اونم نمازی که گفتن آقا آفتاب داره میزنه گفت من نماز لبتلایی میخوام بخونم که آفتابم یه گوشش زده باشه خب اینی که این مقدار استقامت ندارد این مقدار من باره رو اینو گفتم عزیزان بازم میگم بازم میگم خیلی از بزرگان اینو به ما یاد دادن گفتن شما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 تا تصمیم میگیری نیروهاشو میفرسه نوچه هاشو کهنچه هاشو بالاها و پایه میفرسه به سراغ شما آقا یه دفعه توی مجلس چنان حرف های بی, ز... بی چیز زده از مجلس میاد بیرون چی بود من گفتم من نمیتونم این زبانمو و یه مقدار صبر کنم جلوشو بگیرم چی دارم میگم من نسبت به مقامات بالای انسانی من در حد کنترل این زبان آقا شکم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 وقت اون بزرگ میگفت از خونه در اومدم اینایی که من میگم صحبت حرام و حلال یه مرحله هست صحبت بالاتر از واجبات و مستحبات ها از در خونه در اومدم خانوم گفت چی میل داری امروز گفتم خیلی حوث قرمه سبزی کردم گفت باش و تو خونه است میپزم ولی وقتی با خودم از در منزل که خارج شدم فکر کردم بیچاره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 خب حالا چه بکنم؟ زور برگشتم منزل غذا رو آوردن ای قرم سبزیه بخار میکرد و گرسنم بودیم و میلم داشتیم و حوسم داره قوغا میکنه ای وسه های شیطانی ذهنیم هی داره تحریک میکنه گفتم باید با شیطان کشتی گرفت چند بار بزنش زمین تا بفهمه برادر چند بار که چشمت به نامحرم افتاد یه لگد به شیطان بزن دیگه نیاد سراغت وقتی برمیگردی نگاه میکنی شیطان میگه نه خوب گیر آوردم این راحت میتونم بزنم زمین انقدر میزنمش زمین میزنمش تا از نظر معنوی بمیره مرد میرم سراغ یکی دیگه یا نوچه‌ای شیطان سر یه رشوه گرفتن سر یه دروغ گفتن سر یه غیبت کردن سر یه مردم آزاری کردن سر یه چی سر یه چی همینجور گفت سر سفره غذا نشستم گفتم خانم از زحمتت متشکرم نمیخوام نسبت به زحمت تو بی قدردانی نکرده باشم ولی من چون یه همچو امری تو ذهنم گذشته میخوام با لذا امروز ظهر من قرم سبزی نمیخورم نون خشک تو خونه هست بده یه کمی نون خشک بخوریم ما صبر تمرین میخواد از این پله های کوچولو کوچولو شروع کنیم صبر اندل مصیبه و صبر علت طاعه و صبرن عن المعصیه معصیات داره الان منو میکشونه میترف به طرف خودش ببره اونایی که دزدای حرفه‌ای شدن از اول که دزد حرفه‌ای نبودن روز اول یه چیز مختصری دزدیدن کم کم به جایی رسیدن که حالا میخندند که شماها چقدر دزدای بی ای هستید که همت عالی ندارید در دزدی کردن باید با همت عالی دزدید و چاپید و برد و خورد و چنین و چنان کرد چرا تون روز اول سبرینش خدایش بیامرزه چه حرف خوبی زد چه حرف خوبی زد فرمود اگه ماه رمضان روزه گرفتی خستهای گرسنهای تشنهی از را رسیدی دم افتاره بهت میگن نون نداریم تو خونه میری تو صف نونوایی در نفر ایستادن با این خستگی میخوای تو صف واسی نونوا آشنا در میاد حاج آقا نون شما حاضره از اون پشت بیا بهت بدم صبر داری بیستی بگی حق من نیست این دهتا رو بده بد به من یا از قدرتت استفاده میکنی میری میگیری می می میری امروز این مقدار قدرت داری صبرشو نداری فردا اگر رئیس جمهوری مملکت شدی در مقابل آن قدرت صبر نداری از همین جا شروع میشه برادر اینکه من هی تاکید میکنم از نگاه به نامحرم به ترس از نماز غذا شدن به ترس از چهار تا دروغ گفتن به ترس از چهار تا غیبت کردن به ترس از بی‌توجهی نسبت به ارزشهای معنوی به ترس چون اینجا که صبر نمیکنید هی سر میخوریم سرازیری رو دیدید سر میخوریم سر میخوریم چنان سرعت بر می حالا وقتی میخوایم جلو خودمون رو بگیریم دیگه نمیتوانیم